صفحه 58. این خاطره پرحرمت با زرتشتیان در پیوند است و نیز نه تنها فرهنگ فارسی به هر تعبیر و هر استعاره که باشد پیر مقان را بزرگ مقان، پیشوای دین زرتشتی، رحبان دیر، ریش سفید میکده، پیر میفروش، رند، پیر طریقت در تصوف معنی می کند. بلکه این اصطلاحات به هر تقدیر در شعر فارسی به کار می رود و نوعی برداشت و ایستاره ایستار توانبا ملاتفت و بردباری و حتی قمیادی از گذشتهای دور را نسبت به جامعه زرتشتی باز می نمایاند. در سرای مقان رفته بود و آب زده نشسته پیر و صلایی به شیخ و شاب زده سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده که کرد اینکه تو کردی به ضعف همت و رأی ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده حافظ نظیری از برای همین ایستار را در کتاب تنزالود رستم و از قول کریم خان زند می‌خوانیم 1348 صفحه 324 ما با یک منجم صاحب حکم گبری آشنا شدیم جاماسب نامه را از برای ما تمام خواند و ما همه را به خاطر داریم این منجم به احتمال قریب به یقین ملا کاووس از پارسیان هند بوده است که از سفر و اقامت وی در نزد خانه زند خبر داریم و همو به تخفیف جزیه ناحق زرتشتیان کرمان کمک کرده است. شهرمردان مردان 1363 صفحات 544 تا 548 همین مهربانی و حرمت را زرتوشتیان در زندگانی عادی خود با مسلمانان ایرانی داشتند و در روابط روزانه همین تساحل و دوستی نزدیک مشاهده می گردد. دستی و فقر زرتوشتیان که به رقم زحمت و کار سخت قرن گذشته با ایشان بوده است، راستگویی و ایمان و وزیف شناسی آنها را نکاست است. دولوسیری و کوشندگی آنان را همواره مورد اطمینان میابیم شواهد بسیار در خاطره‌ها مانده و نیز به نگارش درآمده است مثلا بویس 1377 صفحه 275 که همسایگان مسلمان خانه و زندگی و دارایی خود را با اعتماد بیشتر به زرتشتیان میسپردند و یا ثروتمندان برای کاری چون باغبانی آنان را آسانتر به خدمت میپذیرفتند انوشی روان به مرد نوش را حاکم یزد هنگامی برای باغبانی در باغهای حرم سلطان به تهران فرستاد که ناصر الدین شاه از او بهترین باغبان کاردان و مورد اعتماد را خواسته بود نقل قول از خانم پریدخت مراد ارتباط با پارسیان هند و روایات با آمدن اعراب به ایران گروهی برای حفظ آین كهن خیش مهاجرت کردند اخباری از مهاجرت زرتشتیان به چین و نیز شمال هندوستان در دست است مسعودی در قرن چهارم هجری برابر با دهم میلادی از بودن زرتشتیان و آتشکده های متعددی در چین سخن میگوید از گرد سوم موسوم به پیلوسه پرویز یا پیروز علامت سال برای گرفتن کمک به تخارستان که جزئی از چین بود رفت. امپراتور در سال 662 میلادی پرویز را به شاهی شناخت. پورداود 1926 صفحه 9. وی و فرزندش توفیقی نیافتند و در همون جا ماندند. در سال 750 میلادی برابر با 139 قمری در اوایل خلافت عباسیان دسته دیگر به چین به مهاجرت پرداختند. از ایشان و نیز از زرتوشیانی که به شمال هندوستان رفتند اثری بر جای نمانده است. پوردابود 1926 صفحه 9 ایساویان ایرانی نیز به سوی هندوستان به مهاجرت دست زدند. پوردابود 1926 صفحه 10 پیش از آمدن اسلام نیز ایرانیان به ویژه روحانیون زرتشتی و نیز بازرگانان به سرزمین مهاجرپذیر هندوستان رفته بودند. مقانه زرتشتی به هندوستان رفته آمد می کردند و پیروانی در آنجا داشتند. سفر ایشان به ویژه در زمان امپراتوری آشوکا بوده است. ارشاد 1379 صفحه 145 به نظر می رسد که انگاره مهاجرت به هندوستان از پیش در زمیر ایرانیان نقش بسته بود است. پجروهش درباره مهاجرت زرتشتیان ایران پس از اسلام نشان می دهد که زمان این مهاجرت ظاهرا در نیمه دوم سده هشتم میلادی باید باشد. این مهاجرت از سواحل دریای عمان به ویژه هرمز و میناب صورت گرفته است و پس از مسافرتی سخت در دریای طوفانی در محلی نزدیک به شهر دیب در هندوستان توقف کردند ارشاد 1379 صفحات 146 و 147 دو داستان درباره مهاجرت زرتشتیان به هندوستان هست. قصه سنجان و قصه زرتشتیان هندوستان. پوردابود 1926 صفحات 2 تا 4 و صفحه 15 به نظم کشیده شدن قصه زرتشتیان هندوستان به قرن هجده میلادی باز میگردد. قصه سنجان را بهمن پسر به که به پسر دستور هرمزدیار سنجان ها در سال 696 یزدگردی برابر با 1600 میلادی در نبوساری به نظم کشیده است. پوردابود 1926 صفحات دو و سه گرچه این داستان تفصیل و اجزای بسیار دارد ولی نکته های اصلی آن با گواهی های تاریخی اسناد و مداره که دیگر مطابقت می‌کند. پور داوود 1926 صفحات 6 تا 9 زرتشتیان پس از رسیدن به هندوستان در گجارات ساکن شدند و در طی تاریخ خیش نشیب و فرازهایی بسیار دیدند. آنان نخواست سرزمینی نا آباد را آباد کردند و سنجان نام نهادند. سنجان نام چهار آبادی در خراسان قدیم است. پردابود 1926 صفحه 8 و مهاجران سازنده سنجان هندوستان از خراسان گریختند. آنان ابتدا به کوهستان خراسان رفتند. سپس به هرمز و از آن راه با دشواری بسیار به هندوستان رسیدند. پورداوود 1926 صفحات 4 و 5 در طی چندین صد تلاش آتش مقدس را به نام ایرانشاه در آتش کده اودواده نشاندند اینان بعداً به رونق اقتصادی و توانگری رسیدند و قدرت یافتند آنگاه با سخاوت و دلسوزی همکیشان خیش در ایران را یاری دادند و در شناساندن آثار فرهنگی ایران باستان به جهان نقشی بنیادین ایفا کردند نریوسنگ پسر دهاول دستور معروف از پارسیان هند است که در اواخر قرن یازدهم یا دوازدهم میلادی برابر با پنجم یا ششم هجری میزیست است پانویس این نام اصلا به معنای دانش نرانه و نیرومند است و بر ایزدی اطلاق میگردد که نماد پیامبری و پیک هرمزد است نام فارسی نرسی از آن میآید ادامه متن وی مشهورترین مترجم متون مقدس ایرانی به زبان سانسکریت است و ترجمه سانسکریت از یسنا و خرده عوستا را از او دانند پورداود 1310 خرده عوستا صفحات 179 و 180 نریوسنگ تحریرهای مهمی از آثار پهلوی به پازند دارد تفضلی 1376 صفحات 119 و 199 چند خانواده بزرگ از موبدان هندوستان از اون جمله خاندان سنجانا نصب خود را به نریو سنگ می رسانند. پوردابود 1926 صفحات 14 و 15 ای به زبان فارسی زرتشتی در دست است که به نام روایات فارسی شهرت دارد. پوردابود 1357 ویسپرد صفحه 162 دانشمند پارسی جیوانجی جامشید، جمشید جی مودی را عقیده بر این است که واژه روایت در این اصطلاح که نیز در نامگذاری چند متن پهلوی به کار می رود باید مرکب از روا به معنی جایز و مجاز در زبان فارسی و پسوند یت عربی باشد مجموعا به معنای آنچه مجاز و جایز و مشروع است پرداوود 1357 ویسفرد صفحه 166 مجموعه بزرگی که به نام روایات داراب هرمزیار شهرت دارد در قرن هفتم میلادی برابر با یازدهم هجری به دستیاری دستور هرمزدیار فرامرز و, و پسرش دستور داراب گردآوری شد و در دوم مجلد بزرگ به کوشش هیربد مانک جی اونوالا با دیباچه از جیوانجی مدی بمبعی 1922 به چاپ رسید و هیربد بهمنجی نوشر وانجی دابار آن را ده سال بعد به انگلیسی انتشار داد پور دابود 1357 ویس صفحه 167. روایات دارابه هرمزیار مجموعه پرسش های دینی پارسیان هند و پاسخ ایرانی است که در تایی نزدیک به 300 سال رد و بدل شده است. آغازان به سال 847 یزدگردی برابر با 1478 میلادی برابر با 8823 قمری و انجام آن سال 1142 یزدگردی برابر با 1773 میلادی برابر با 1187 قمری است. این دوران از روزگار سلطان حسین میرزا از شهریاران گرکانی تیموری را تا روزگار کریم خان زند دربر می گیرد. پور و 1357 ویسپرد صفحه 163 این پرسش ها و پاسخ ها با نام پیکی مشهور شده است که از هند به ایران گسیل می و نامه و پیام می و سپس پاس پاسخ را می گرفت و باز میگشت. مانند روایت نریمان هوشنگ، روایت کاووس کامدین، روایت کاووس ماهیار، روایت بهمن اسفندیار و جز اینها گاهی هم این روایات به نامه کسی خوانده شده است که فرستنده پرسش است پور 1357، 20 فرد صفحه 163 نخستین فرستاده نریمان هوشنگ از شهر بروچ ایالت گجرات بود و یک سال در یزد ماند و زبان فارسی را از کسی به نام جاماسپ شهریار آموخت. و پاسخنامه در سال 847 یزد گردی به قلم شاپور پسر جاماسپ شهریار بختافرین نوشته شده و خطاب است به بهرام شاه که از سران و بزرگان پارسیان در نواصاری بود پوردابود 1357 ویسپرد صفحه 163 زرتشتیان ایران به پایمردی این نخستین پیک از بودن گروه همکیشان خود در سرزمین هندوستان آگاه شدند و در شگفت ماندند. گویانه می دانستند که در آن خطه هم کیش زرتشتی پیروانی دارد. پوردابود 1357 بیس پرد صفحه 164 این داد و ستد در سر و سر خطه های زرتشتی نشین ایران و هند ادامه یافت و گنجینه غنی و پربرکت روایات فارسی را فراهم آورد زرتشتیان ایران تقاضا کردند که دو تن از موبدان هندوستان برای آموختن پهلوی به ایران بیایند تا بتوانند کتاب های دینی و گزارش های اوستا را به آن زبان بخوانند در ایران فقط چند تن از عهده خواندن خط پهلوی و فهمیدن مطالب آن برمیآمدند و چون به کارهای دینی اشتغال نمی نمیتوانستند برای آموزانیدن زبان پهلوی به همکیشان خود و آن سرزمین گسیل شوند. پور داوود 1387 ویسفرت صفحات 164 و 165 این رفت آمدها همچنان ادامه پیدا کرد چه به شکل سفر به ایران و هند و چه به شکل مهاجرت ایرانیان به هندوستان از جمله های مهاجر زرتشتی به هندوستان نیاکانه، مانک جی، لیم جی، بودند که در اوایل زمان صفویه از ایران به هندوستان رفتند همچنین از سفر ملا کابوس از هندوستان به دربار کریم خان زند سخن رفت که حضور او در ملازمت کریم خان و پایمردی در رسیدن شکایت به دست خانه زند از نخستین یاوری هایی بود که زرتوشتیان هند نسبت به همکیشان خیش در ایران ارزانی داشتند در صفحه 64 تصویری از یک زن زرتوشتی از روزگاران گذشته درج شده است صفحه 65 فصل 4 دوره معاصر دانش دینی و آگاهی‌های مندرج در نسخه های خطی گنجینه شگرفی است که خاندان‌های موبدان آنها را در طی قرون متوالی نگاهداری کردند در پایان قرن 11 همه هجری علم و اطلاع موبدان و روحانیون زرتشتی درباره این آثار کاستی گرفته بود دانشانان در پی نسخه های خطی ها به هندوستان رفت و سپس به دست پژوهندگان اروپایی رسید و بر بنیاد آن تحقیقات دین زرتشتی از سر باز شناخته شد. پارسیان هند به موجب دلبستگی به دین زرتشتی و عشق به ایران، موتن اصلی خیش کوشیدند تا اصلاحاتی در جامعه زرتشتیان ایران به عمل آورند. در پی این تحولات، جامعه زرتشتیان ایران شکلی تازه به خود گرفت و توانست در دوره معاصر و عصر تجدد در خدمات فرهنگی و اجتماعی بیشتری مشارکت جوید و مستر اقداماتی سودمند گردد. 1. نسخه های خطی امروزه شماره اندکی از دست نوش های و پلوی و فارسی زرتشتی در ایران باقی مانده است باید پذیرفت که اوللا آن تعداد از این نسخه‌ها که همینک در دست صداگران میراث فرهنگی ما است بسیار بیش از شماران هایی است کهمراکز فرهنگی کشور در تتصارف دارندشان و از آنها مراقبت و حمایت می‌کنند. کنند سانیان هنوز هم می شود انتظار داشت که در زیررزین های تو در توی خانه های از دوکرمان و یا در کان در صندوقی آهنین دور از دسترس موریانه و موش و سوسک و دیگر خرفستران اهریمنی از جمله سوداگران دزد کتاب‌های عتیقه یادگاری از آن دوران قدیمی و تلاش دشوار و سرسختانه فوزلای كهنسال این دیار گنجی ناشناخته بر جای مانده باشد درباره این اکتشاف نیاز به چیزی بسیار ارزان و بسیار ساده و بسیار کمیاب هست و آن دادن آگاهی و علم و اطلاع از پیرامون ارزش این کتابهایی که دارندگان آن قادر به خواندنشان نیستند این ناآگاهی آگاهی که تا کنون آفریده و بس آثار بیبه ها و گرانقدر را به آب دریا و تنورهای آتش سپرده است تنوس هم متاسفانه به قوت خود برجای است و عمل می کند. قضیه چندان داغ است که نه تنها آن را در خود خانه‌ها و کتابخانه‌ها در ایران و هندوستان واقعا به چشم می‌شوید دید، بلکه حتی در مؤسسه شرق شناسی کاما در سال 1380 جلسه‌های سخنرانی از سوی سازمان ملل متحد برای دادن آموزش در این باره برگزار شده است. در ایران هم اخبار دردباری مرتباً می‌رسد و البته فاجعه این است که این خبرها همیشه پس از وقوع حادثه به دست مسئولان می‌افتاد. اینگونه اخبار و ناشناختن و نادانستن ارزش دست ها رفتاری نامسئولان است نسبت به زحمت طاقت که مردمی شریف و فاضل و گمنام برخود روا داشتند تا میراث عظیم فرهنگی ملت ایران را که متعلق به همه جهانیان هم هست زنده نگاه دارند. از روی شواهد شناخته چنین پیداست که پس از قرن سوم و چهارم هجری بخش اصلی همت و کوشندگی مصروف بوده است بر حفظ میراث گذشتگان و نسخ برداری و رونویسی کردن از دست نوشته‌های قدیمی و کهن کتابها. این مجاهدت که ارزندگی وافر دارد در این روزگار دراز اغلب جای نوشتن و خلق آثار تازه را گرفته است نادر هستند کتابهایی چون دست نویس میم و بیسونا که گرچه منحصر به فقط برخی از قطعه های آن باشد تحریری تازه از متون کهان است به خط و زبان پهلوی. نویسه هایی چون روایات فارسی فقط به زبان فارسی نگارش یافته است و نه پهلوی. به خط ابستایی در آوردن متن پهلوی یعنی تحریر پازند برای آثار پهلوی و سپس برگرداندن متن ابستایی به خط فارسی در شمار همین رونویسی کردن و بازنویسی است دستور به ولایتی از نخستین کسانی است که در حدود 1092 گردی به خواهش موبد مهمنجی پسر رستمجی در بمبایی و لابود بنابر میل زرتشتیان هندوستان دست به برگردان متن اوستایی به خط فارسی زد و برایش کاری دشوار بود حالا که می دانیم تا بیش از یک خرن بعد در ایران هنوز نسخه برداری از کتابهای کهن اوستایی انجام می گرفته و دست نوشتهی به خط به بهروز ابن اسکندر ابن گشتاس ابن بهمن فرامرز اسفندیار به تاریخ هزاردویست بستشش مطابق هزاردوتتاس قمری صفحه دویست سوشش دستنویس بر جای است و این دستنویس به خاندان ارباب جمشید ساروشیان تعلق دارد نیز لابد چون خواندن دین دبیره برای موبدان هنوز آسان بوده است حتی در سال 1262 یزدگردی برابر با 1893 میلادی در نسخه ای از یسنا و ویسفرد به خط اوستایی به احتمام دستور نامدار ابن دستور شهریار و دستور رسم ابن موبد خسرو مهربان ایرانی نژاد به چاپ رسیده است عدیده های جدید صنعت چاپ و بررسی علمی این متون منتج به رسیدن دستاورده این رنج های دیرنده به دست کسانی جز موبادان شد و آنگاه مسئله به شکلی دیگر ترک گشت. در سال 1270 از در کتاب خورده عوستای چاپ موباد رستم رشید و آموزند ابن شیرمرد به خط فارسی برگردان زند بهمنی است به خط فارسی چاپ شده است. طفعات 467 تا 495. در دیباچه کتاب اخیر از نیت برای انتقال دانش جدید درباره کتابهای زرتشتی به زبان فارسی سخن رفته است نیز بخشی از اوستا با ترجمه تیرانداز چاپ دوم هزد یزدگردی برابر با هزا قمری انتشار یافت و ترجمههای شادروان استاد ماستر خدابخش از اوستا و متون پهلوی متاسفانه دستخوش تطاول و ستم روزگار و وابنای آن شد و برباد تا رسیدن به دوران جدید به همت و با تلاش و کوشندگی مبدان یزد و کرمان و یارمندی جماعت زرتشتی که گرچه از دیرباز تحت فشار و در سختی میزیستند به حمایت برخاستند نسخه های موجود اوستا و پهلوی بارها و بارها استنساخ و رونویسی شده و بر جا مانده است. نسخه هایی به هندوستان رفت و به دست پارسیان هند یا مستشرقان اروپایی رسید یا چاپ شد و در کتابخانه های محفوظ باقی ماند و یا هنوز با خطر ازمهلال دست و پنجه نرم می کند. دانشمندان پارسی از روی برخی از آنها نسخه های تازه باز نویسی کردند. در ایران تا اواخر صده نوزده مسیحی هنوز سخت آن بود که این نسخه ها عمدن معدوم گردد. بویس 1377 صفحه 245 اگر باشند کسانی که خوردهگیری نمایند که چرا بخش عمده آثار کتری ایران باستان نابود شده و فقط انده که از آن انبوه باز مانده است باید به یاد آورند که مصامحه از موبدان زحمتکش و جانفشانان فاضل نبود است بلکه شرایط دشوار زمانه چنین کرده است ویس 1377 صفحه 245 برخی از این نسخه های موجود کانونی که در کتابخانه های هندوستان و اروپا یا در خانه ها و مجموعه های شخصی هستند در هند کتابت شدهاند در هندوستان از همان آغاز مراوده با ایران در دوران نگارش روایات فارسی کتابهایی به خط و زبان اوستایی و پهلبی وجود داشته است روایات داراب هرمزیار جلد دو صفحه 394 که قادر به قرائت و فهمیدن آنها نبودند در این باره موبدان ایرانی به یاری آنان برخواستند به ویژه نسخه های خیش و یا رونویسی از آنها را برای استفاده به هندوستان فرستادند. در میان این نسخه‌هایی که فرستاده می‌شد، حتی ارداویراف نامه مصور هم بوده است. بویس 1377 صفحه 260 و روایات داراب هرمزیار جلد دو صفحه 459. همچنین ترجمه از متون کوهن به خط و زبان فارسی برای فرستادن انجام گرفته است. روایات داراب هرمزیار جلد دو صفحه نود و جز آن. از موبدی که خود را بنده دین، هیربد هوشنگ سیاوخش شهریار بختآفرید شهریار میخواند و نام او وخی شاوندانش در روایات داراب هرمزیار آمده است با تاریخ 847 یزدگردی و همچنین از شاپور جاماسب شهریار بختافرین شهریار بهرام نوشی خبر داری. این هر دو از کاتبان نوشته هایی هستند که به هندوستان فرستاده شده است شاپور می نویسد که این را از دفتر رستم شهریار و شادروانانی دیگر رونویسسی کرده است روایات داراب هرمزیار جلد دو صفحه ۷2. و, و, دو دو و نام دستور رستم شهریار در صفحه ۳96 و و همین کتاب آمده که احتمالا نام همین صاحب کتاب است. اینگونه دقت به ویژه در آغاز نوشته دستنویس نویس دانوود دیده می شود که اصلا تعلیف هوشنگ سیاوخش است. نکته مهم در این بن نوشت اطلاعیست که وی از چگونگی گردآوری نسخه‌های دیگر و بازنویسی آنها به دست می‌آید. دستور هوشنگ سیاوخش از چندین نسخه کهنه برای نگارش و کتابت یسنا و زند آن با یاوری و راهنمایی ایزدان بهره گرفته بوده است. وی که نامش در ردیف قدیمی ترین پاسخ دهندگان به پرسش های روایات فارسی آمده است آن نسخه اوستا را برای خود و فرزندانش نوشته و این را در بن نوشت کتاب ضبط کرده است. همچنین نوشته هایی که برای هندوستان کتابت کرده است تاریخ و توضیح دارد مثلا روایات داراب هرمزیار جلد دو صفحه 368. دیگران گاهی این مایه دقت و علاقه را در ضبط نام و تاریخ نگارش خود نداشتند و یا دست زمانه و الیلی نظیر ناپیدا و خلط گشتن نام کاتبان در طی چندین بار رونویسی شدن کتاب و ناممکن بودن تشخیص آنها از یکدیگر موجب حذف نام بوده است. گاهی به دلیل آنکه فرسایش کتاب در برگ‌های های آغازین و پایانی بیشتر است رسم دیگری هم پدید آمده بوده است و آن آوردن نام کاتب در میان کتاب های است این شیبه در چند نسخه اصیل ایرانی دیده می شود مثل وندیداد اطابک و وندیداد به خط فریدون مرزبان مزدابور 1381 کاتبان به عرج کارخیش و نامعجور بودن آن واقف بودند. روایات داراب هرمزیار جلد دو صفحه چهارسد و بیست و دو. ندانی اگر قدر این را به جان تو خود را بپرس از نویسندگان که دانند ایشان ورانیک ارز بهای یکی نسخه یک شهر و مرز. دستور هوشنگسیاوش سیاوش زمنان که تهدید کرده است که هر که نام او را از کتاب بسترد و پاک کند پاسخ بو خواهد بود در سر پل چینود چیزی را خواسته است برتر از نام و آوازه وی که نام صاحبان دست نویس های اصلی و کهن کتاب را عادتاً ذکر می کند تمع دارد که نوشتم که چون خوانند یا آموزند یا پچین یا رونویسی ازش کنند این بنده را به نیکنامی یاد کنند و در هر نیکی کشان همی رود مرانیز هم بحر یعنی دارای بحره و سهم مشترک کنند تاشان آفرین کردارتر یعنی بیشتر آفرین کننده باشم باجه ها با کمی جرح و تعدیل بازنویسی شده است وی و همچنین دستور پر هر دو در پایان کار هدف نهایی از کتابت را میآورند. شاد آن تنکش ورزید روان خیش روایات به هرمزیار جلد دو صفحه 371 و 3722 و ورزیدن یعنی پروردن و رشد و نمو دادن رستگار کردن به بیان دیگر بنیان و هدفی دینی و ایمانی در کار کتابت بود است. خدایش بیامرزاد که برخاناد و کار فرمایاد و ما را به نیکنامی یاد کناد. روایات داراب هرمزیار جلد دو صفحه 372 این درود را باید به انکتیل دوپران و مستشقان دیگری فرستاد که در پی او به کار ایران شناسی روی آوردند زیرا از آن پس بود که ایرانیان نیز زبان پهلوی و سپس ابستا را از یاد بردند و همه نسخه های قدیمی و علم و اطلاع دینی در معرض خطر فراموشی تام افتاد در این اسنا شد که بزرگانی بیگانه و جوگنده علم و دانش قد برافراشتند و با چشمی روشن و قلبی از هر گونه انتظار دریافت پاداش فقط و فقط به صدای دانستن و با شرافت علمی به پژوهش در این عرصه پرداختند از آن پس باز هم نسخه های و پهلوی به سوی هندوستان و از آنجا به اروپا بیشتر روانه شد نام کسانی چون موبد خدا بخش فرود آبادان ماهیار نوایی پیشگفتار بندهش ایرانی صفحه دو را در این دومین دور سفر نسخه های خطی از ایران باز مییابیم همچنین نام موبدانی که در هندوستان به کار گردآوری این دست نویس و بررسی آنها پرداختند فهرست بلندی را میسازد مانند ماننده دینشاه انکلساریا که چندان غنی هم نبود ولی به گردآوری و خرید نسخه ها می پرداخت. دست نوشته های ملکی وی با نشانه تیدی مشخص و اصل آنها اینک در کتابخانه کاما در بمبعی محفوظ است. بزرگانی مانند شادربان استاد یحیی ماهیار نوابی در ایران به چاپ این نسخه های خطی علاقه می و از هر فرصتی برای دست دادن به اقدام سود می جستند. همه دعای خیر دستور هوشنگ سیاوخش و دستور شاپور جاماسب و دیگر کاتبان بدرقه نام باد. دو، ارتباط با هند و انکتیل دوپران یکی از موبدانی که پیش از رفتن انکتیل دوپران به هندوستان و انتشار کتاب زنده اوستای او به زبان فرانسه در اروپا کتابهای خود را از ایران به هند برد و در آنجا گذاشت دستور جاماسب ولایتی بود. وی بحرامیشت را از خط عبستایی به خط فارسی در آورد شه مردان 1363 صفحه 431 و هنگام مراجعت به ایران گذشته از بحرامیشت به خط عبستایی و فارسی یک نسخه وندیداد درست با تفسیر پهلوی آن یک کتاب یسنا و ویس فرد و یک ترجمه وجارکرد دینی و نیرنگستان را در هندوستان به جای گذاشت ترجمه این دو کتاب اخیر به فارسی است و با جملات زند مخلوط است و در چه گونگی مراسم دینیست شاه مردان 1363 صفحات 429 و 430 دستور جاماسپ در یک نسخه اوستایی به خط خیش که به نشانی ام 50 در کتابخانه دولتی مونیخ محفوظ است خود را جاماسپ پسر دستور حکیم فرزند دستور اردشیر می‌خواند و تاریخ ورود خود را به بمبئی 1091 می مینویسد و گرچه یعنی آرزوی دیدار موبد بزرگوار رستم جی ابن جی داشت و با درگذشت او به دیدارش نائل نیامد از و مهمان نوازی دیگران برخوردار گشت از بمبعی به بندر صورت و باز از راه بمبعی در سال 1093 یزدگردی آزمه ایران شد شه مردان 1363 صفحات 430 و 431 انکتیل دوپران در باری اومینگارد تقریبا 46 سال قبل دستور بسیار دانشمندی ماسوم به جاماس به ولایتی از کرمان وارد بندر صورت گشت. دستور نامبرده در اتحاد زرتشتیان که در مسئله استعمال پنامد و فرقه شده بودند ابراز مسائی نمود. در تعلیم چند نفر موبد بکوشید. موبد داراب را از صورت و موبد جاماس را از نوستاری و موبد دیگری را از بروچ انتخاب نمود و در تعلیم آنها حمت گماشت و زند و پهلوی به ایشان بیامخت. شهرمردان مردان 1363 صفحات 428 و 429